علای ای توتی گویای اسرار مبادا خالیت شکر زمن قار سرت سبز و دلت خوشباد جاوی که خوش نقشی نمودی از خط یار سخن سربسته گفتی با حریفان خدا رازین معما پرده بردار به روی ما زن از ساغر گلابی که خواب آلوده ای بخت بیدار چه ره بودین که زد در پرده مطرب که میرقصند با هم مست و خوشیار از آن افیون که ساغی در میفکند حریفان را نه سرماند نه دستا سکندر را نمی بخشند آبی به زور و زر و نیست این کار بیا و حال اهل درد بشنو به لفظ اندک و معنی بسیار بوت چینی عدوی دین و دل هاست خداوند دل و دینم نگه دار به مستوران مگو اسرار مستی حدیث جان مگو با نقش دیوار به یمن دولت منصور شاهی علم شد حافظن در نظم اشعار به یمن دولت منصور شاهی علم شد حافظن در نظم اشعار خداوندی به جای بندگان کرد خداوند آز آفاتش نگه دار.